خیلی سال پیش حدود کمتر از 6 سال پیش ما شروع کردیم از حوزه مای که میگم من و دوستم از حوزه استفاده تنها از آرت فاصله گرفتم و کمک گرفتن از مشاوره و دوستان که تو زمینه تکنولوژی به زمینه تصویر تک از نظر کامپیوتر و فضاهای مجازی بود برای هر هنرمند خیلی جذابه که اثرش کاری که خلق میکنه، کانسپتی که روش فکر کرده روی دیوار بره، توی گالری خیلی متبری بره، وارد ای بشه، اون آدم تبدیل به برندی بشه، توی تاریخ هنرش تاثیر بذاره، وارد موزه های دیگه ای دنیا بشه، و با همکاراش، هنرمند های دیگه، کارشناس های دیگه، و, و, و, و بتونه خیلی لینک ها، ارتباطات و اتفاقات خوبی داشته باشه. یادم یه زمانی خیلی آرزو داشتم اولین فیلم رو بسازم و وارد جشتوارهش کنم 19 سالگی این کار اتفاق افتاد و فیلم منتقه به جشتواری تهران شد هیچ ذوقی نکردم رفتم جلوتر خیلی دوست داشتم بتونم روی سن تالار وحدت یک اتفاقی بیفته که من بتونم اونجا یکی از کارها رو اجرا کنم روز رویرانس قبل از اینکه مخاطبه بیان توی سالن سالن خالی خالی بود همه پشت و کستج ایستاده بودن داشتن آماده میشدن تمرکز می‌کردن اومدم به سحنه. تمام رو صحنه تمام صندلی‌ها رو پودیومای با پودیوم نه حالا سنای بالا قسمت و شاهنشین حالا وی اون رو نگاه می‌کردم خالی خالی همین و باز لذتی نبود گذشت این اتفاق تجربه ها کارها برگشت به اینکه چجوری شد من هنر رو انتخاب کردم با اینکه لذت ازش برم. من به شدت علاقه من به فیزیک بودم به رشته ریاضی فیزیک می یک یه قسمتی از زندگی من یک اتفاقی افتاد که من یواشکی از مدرسه اومدم بیرون و بدون اینکه خانواده مهندس پزشکی من بدونن رفتم هنرستانی امتحان دادم که از هنرستان های تهران و شروع کردم به هنر خوندن بعدم عواقبش رو دیدم بعد شروع کردم درس خوندن و پشیمون از این اتفاق نیستم ولی هنوز خوشحال نبودم احساس میکردم یه چیزی خارج از گالری اتفاق میافته که من ازش واقف نیست و ازش دورم و بهش واقف نیستم. اون چیزی بود که مردم من از هنر دور بودن. اون چیزی بود که احساس می کردم که خب آدم هایی که نمیان تو حوزه من چجوری هنر رو درک می‌کنن. آدم هایی که وارد موزه ها وارد گالری ها وارد آرت فرا وارد خیلی جاهای دیگه نمیشن چجوری هنر رو درک می‌کنن. چه جوری میتونه براشون جذاب باشه چیزی که انقدر من برام لذت بخشه یه سفری داشتم به یکی از کارها ما توی بانهوف شهر کل نجرا کردم و ضبطش کردم اون کارو ضبط شده اووردم و توی این کاری که دارید میبینید توی یکی از گالری های تهران پلیش کردم به وسیله دیوایس روی خودم وارد هنر تجربیاتی که داشتم وارد هنر پرفورمنس آرت شدم هنر پرفورمنس هنریه که بدن توش خیلی دخيله یعنی مخاطب به وسیله حالا بدن هنرمند و اتفاق یه چیزی ما بین هنرهای تجسده و هنرهای نمایشی هستش و با مخاطبش و با بیننده‌ش ارتباط برقرار میکنه و اولین تجربه من بعد از حوزه تصویر عکس و سینما و درامی که بود وارد حوزه پرفورمنس شدم که به صورت کاملاً رو در رو با مخاطبم در ارتباط بودم دوی همین و هوش یا کمی قبلتر از این اتفاق یکی از دوستان صمیمی من تصمیم گرفت به خاطر ادامه تحصیل مهاجرت کنه تهران ایشون علاوه بر اینکه دوست صمیمی من بودن جزء اولین کسایی بودن که ما میتونستیم با هم تیم ورک کنیم چیزی که خیلی وقت بود دنبالش میگشتیم کار میکردیم جواب نمیداد پروژه هایی رو با تیم ورک میرفتیم جلو و به نهایتا آخرش زیاد دلچسب نبود من با این دوست خانم سیروس خیلی کار کردم وقتی که تو رفت من احساس کردم یه قسمتی از من خالی شد. و دیگه نمیتونم کار کنم. شروع کردیم هر روز با هم صحبت کردم. هر روز با هم گفتگو می کردیم حالا به وسیله اتفاقات مجازی که هست برای هم تکس می کردیم خبرات میرفت میومد یعنی دیگه فکر نمیکردیم نیستیم. ما هیچ وقت خاطراتمون رو نگاه نکردیم. ما هیچ وقت عکس‌هایی هایی که با هم داشتیم قبل از ما رو نگاه نکردیم. هیچ وقت به این برنگشتیم که یاد تاین روز این کار رو کردیم به خاطر اینکه ما تمام روز با هم در ارتباط بودیم. تمام روز صبح اون شب من، شب من صبح اون ایشون توی کالیفورنیا است. با هم گفتگو می کردیم. و شروع کردیم به استارت زدن پروژه ها. به این فکر کردم که چطور می‌تونم تونم خواهش می به این فکر کردم که چطور میتونم یه پنجره‌ای داشته باشم برخلاف این پنجره مجازی که بتونم باهاش آرزوهامون رو منتقل کنیم بتونیم باهاش فضای اتفاق رو از توی گالری‌ها و موزه‌ها بیاریم بیرون بتونیم این پنجره رو عمومی‌ترش بکنیم ما اومدیم پنجره‌ای که باهاش تمرین می‌کردیم و باهاش زندگی می‌کردیم رو وارد گالری کردیم یعنی زندگی خودمون رو آوردیم توی گالری و شروع کردیم فر ادبیات بهش اضافه کردن شروع کردیم بهش موسیقی اضافه کردن و دیالوگ رو ازش حذف کردیم یعنی مکالمه رو ازش گرفتیم و اجازه دادیم فضایی خارج از فضایی که آدم‌ها تجربه دارن قبل از اینکه بتونن پردازش کنن رو بهش اضافه کردن شما که الان مقابل من نشستید شیوه نشستنتون فرمی که گرفتین به میزان توجهتون به من تاثیر می‌ذاره وقتی که شما نشستید شیوه فشاری که دستاتون رو گرفتید اینها همه توی پرفورمنس آر تاثیر داره شیوه تکیهی که به منگاهتون دادید شیوهی که سرتون قرار گرفته یا نوع نشستنتون به میزان توجهتون به من تاثیر داره هر کدوم از شما ها به میزانی که نوع بدنتون قرار گرفته میزان دریافتتون از من متفاوت ما این رو جلوتر بردیم ببخشید چشم ما این رو به این سمت بردیم اگه محبت کنین بره پوشه بعدید که بیاریم حالا فضای بازتر توی زندگی روزمره مردم متأسفانه یا خوشبختانه هنوز زمان خوشبختان هنوز زمان ایران نرسیده ولی یه خوشبختانه دیگه ما این فضای زندگی رو تو چند شهر اروپایی تست کردیم فضای لایو زندگی اروپایی با نگرهش کانسپتی که ما تو هنر داشتیم توی شهر دو شهر آلمان، یک شهر فرانسه و یک شهر توی سان فرانسیسکو توی کالیفرنیا که مردم بدون واسطه با هم بتونن با تهران و شهرهای دیگه در ارتباط با هم به اشتراک بذارن بدون اینکه خودشون بدونن دارن با همدیگه تقابل میکنن و این توی گفتن آرزوهاشون بود توی طرح بعدی که داشتیم اومدیم اوبژه بدن رو ازشون حذف کردیم که این طرحی بود که ما توی موزه هنرهای معاصر کار کردیم اومدیم اون پنجره ای که همیشه داشتیم و باهاش دنیامونو تقسیم میکردیم روی آسمون قرار دادیم یعنی گفتیم بیایم زندگی رو اینطوری کنیم همه شماها و همه ما حتما براتون پیش اومده که قسمتی از رو توی استراحتی که داشتین توی سفری که داشتین اگر تپه ای بوده اگر ساحلی بوده اگر منزلی بوده که شب اون آسمون پرستاره بوده شما حتما دراز کشیدید و آسمون رو نگاه کردید مشاورهایی که تو زمینه خواب داشتیم صحبت می کردیم و سری از مشاوره که تو زمین تیکامما بودن خواب چند مرحله داره که دارهکشدجمع دکتر بهتر بدونن بعدا عادت میکنه از بعد از هفت دقیقه بعد از حال قبل از دوره گاما بعدا رفلکسش رو از دست کمتر نه از دست ولی کمتر میشه و وارد رویا میشه و شروع میکنه به رویا پردازی و آرزو کردن اینکه شما به آسمون میگن شده من یه اون سی ستاره تو آسمون داشته باشه و شروع میکنید به اینکه خب من می‌خوام چیکار کنم؟ خب آرزوی من اینه. ما اومدیم تصویرمون رو از روی دیوار بردیم روی فضای سقف موزه هنرهای معاصر و دانشگاه سی‌سی‌ای یعنی آرت کالج کالیفرنیا توی سانفرانسیسکو و دوباره یک اتفاق لایو بین آدم‌ها افتاد. تفاوتش این بود که فقط جامعه هنری نبود. هر کسی می‌تونست بیاد از دین دانشگاه از فاکولتی‌های مختلفی که بودند دانشجو و آدم‌هایی که بیرون بودند توی موزه راهگذرها کسایی که با هنر علاقه داشتن می و کسایی که حالا مرتبط بودند و اینها شروع کردند و من و همکارم شدیم پل ارتباطی پنجره‌ای که ما باهاش زندگی می‌کردیم و تجربه می‌کردیم شد پل ارتباطی ما که بیایم فضایی رو ایجاد کنیم که آدم‌ها با اون آسمون که این پروژه اسمش می‌ونید اسکای بود که ما سری ها و ترتیب مختلف پروژه هامون رو شروع کردیم من خیلی عوض میخوام من چون ندارم بعدا به من بگید. این یونی صفای اسکای یعنی هماوایی آسمان باعث شد که تمام اینا تک تک با هم آرزوهاشون رو مطرح کنند خیلی جالب بود که برای افرادی که توی سان فرانسیسکو بودن خیلی راحت میمدن شرکت میکردن آرزوهاشون رو میگفتن و جنس آرزوهاشون با ما یک کوچولو متفاوت بود. اینا برای ما فیدبرک های خیلی جامعهشنناانه زیادی داشت. توی ایران غاب یه مقدار سخته. یه مقدار از اینکه بیایم از این قالب شخصی جدا بشیم و اون رو اشتراک بدیم به بقیه که ما داریم چیکار میکنیم ما چه آرزووی داریم و درباره صحبت بکنیم سخت اتفاق افتاد ولی اتفاق افتاد و خیلی اتفاق خوبی بود. طوری که حتی کسایی رو داشتیم که بیشتر از 5 بار دوباره این اتفاق رو تکرار می و وقتی که تو کف موزه هنرهای معثر خوابیده بودن، آرزوهاشون که میگفتن بدون اینکه بدن مزاحم این بشه که واکنشی نسبت به مخاطب یا به اتفاق داشته باشه سخفی از آسمون رو می‌دیدن که آدم‌هایی مثل خودشون تو یک لوکیشن متفاوت داره همون رو میگه این داستان از کجا آمد؟ از زمانی که من اشاره کردم فیزیک برای من خیلی جذاب بود همیشه برای من سوال بود این خط زمانی کجاست این کجاست که ما داخلش هستیم یکی دیگه آیا هست آیا نیست اصن این خط زمانی چه معنایی داره همه ماها، همه نیاکانمون و همه آیندگانمون روی خط زمانی هستیم. ما فقط لوکیشنمون جدا میشه. روی پروژه‌هایی که ما کار می‌کنیم، میتونم بگم بی پروژه پروژه‌هایی که من و شرقایق ما هم کار کردیم، پروژه‌های نان استاپ تو 24 ساعت کاره. من 12 تا 14 ساعت دارم کار می‌کنم، هنوز آف نشده و قروب من نشده طلوع اونور و شروع کار روی اونه. یعنی ای که 24 ساعت داره روش کار میشه. یعنی لوکیشنمونه که ازمون فاصله انداخت. و دیگه اون اتفاقه به جای به اینکه اون حسرته باشه که از هم جدا شدیم اومدیم این فضا و این مکان رو برامون کمرنگ کردیم و یک خط ای براش ایجاد کردیم که بتونیم هم با هم در ارتباط باشیم هم بتونیم خلق اثر کنیم و هم اون اتفاقی که دوست داشتیم خارج از گالری ببریم رو شکل بدیم این خط زمانی توی پروژه قبلی اسمش گذشته آینده آینده گذشته بود پاست اف فیوچر فیوچر اف به معنی اینکه ایران نیم روز از کشور آمریکا، حالا از یه قسمتی که دوست محمود به اون جغرافیا جئوگرافیا کاری ندارم ما نیم روز از اونها بیشتر زندگی میکنیم جلوتر زندگی میکنیم پس ما آینده گذشته اونهاییم یعنی وقتی که من دارم باهیش صحبت میکنم تو جایی ایستادم که اون هنوز تجربه نکرده چه جالبه که گذشته ای من از من پیشرفته تره و وقتی که اون شروع میکنه داره جایی رو زندگی میکنه که من ازش رد شدم نمیدونم این برای من خیلی جذاب بود و اینو کردیم ادامه کاری که داریم روش کار میکنیم و پروژه‌ای که داریم جلو میبریم این اتفاق بعد از موزه هنرهای معاصر و بعد از اینکه اون قضیه خوندن ها پیش اومد برای من خیلی جالب بود که های ما ایرانی‌ها هنوز فردیه و رویه های اونها جهانی اصلا خوب و بد معنی نداره یه گزاریه که تیمی کنن و آنها رسیدن به اینکه رویاهای جمعی دارن و ما رویاهای فردی داریم پروژه بعدی ما یونیسف های دریمه که سپتامبر شهریوری که جاری هستش اوایل مهر به واسطه داخل ایران و پروداکشن استیج تو همون سی سی ای و بنیاد لاجوردی داره دوباره کار میشه و از ورژن بعدیش توی 2017 ما دعوت شدیم با یکی از معروف ترین و بزرگترین سوشال شبکه‌های اجتماعی که همین شما شماها می‌شناسیدش قراره باهاشون کار کنیم و خیلی خوشبختیم که تو این زمینه الان پیشنهادی داریم از مشاورهایی که استاد دانشگاه هنر دانشگاه سمفورد هستن و مشاورهایی که توی سابقه کار توی ارزم به حضور شما و سیلیکون دارن که یکی از مشتریای بزرگشون هم سیسکوئه که دکتر گفتن و این کار داره مرز بزرگی رو باز میکنه همه اینا رو براتون تعریف کردم و من اینجام و خوشحالم می‌بینمتون از این که یک آرزوی کوچیک و درخواست یک پنجره برای قطع نشدن یک رابطه الان داره پنجره می سازه بین شهرهای مختلف بین زندگی‌های مختلف چیزی که ما رو جدا می‌کرد از اینکه بتونیم هنرمون رو از اون فضا فاصله بگیریم و بتونیم عمومی‌ترش بکنیم و یا ما یه پنلی داریم توی نوامبر آینده بین ش... توی خیابونای سطح تهران و یکی از شهرهای خارج از ایران که زندگی لایو مردم توی تقابل با هم دیگه است یعنی ما می‌کنیم یک جایی خورشید داره غروب می‌کنه و یک جایی طلوع. در صورتی که این فقط جابجایی این لوکیشن‌ها و فضاهاست از جغرافیای ماست. و ما روی یک خط زمانی فقط نودهامون متفاوته. کسی نرفته، کسی هنوز نیومده، به همدیگه نرسیدیم و این طنجره‌های ارتباطی باعث میشه که دنیامون رو توی رویاها، توی آرزوها، توی شناخت همدیگه من خیلی، خیلی دارم ساده و اونجوری که لذت میبرم براتون تعریف میکنم. ولی وقتی که بهش نگاه میکنید، انقدر جامعه شناسی و شناخ داره رویای اون جوانی که میگه اگه من برم اونور چه اتفاقی میافته؟ و بعد داره رو همون آسمونی که پر از ستار هست، همون آدم میبینه که داره رویا شبیه رویای شماست. از رویایی حرف میزنه که شما همون رویا رو دارید. ممنونم ازتون، متشکرم.